گرامیان درود بر شما فایل آبایی هفتم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخ رو با هم آغاز میکنیم صفحه 92 عنوان حلول ارواح و تسخیر توسط شیاطین. در سال 2011 دکتر کازوهی رو تاجیما و همکارانش از بخش روانپزشکی بیمارستان سنکارلوس کارلوس مادرید گزارشی درباره دختر مجرد 28 ای می‌دهند که به دلیل اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی تحت درمان قرار داشت. این دختر در سن 22 سالگی و در جریان سفری به جزایر قناری برای اولین بار صداهایی به گوشش می رسید. او میگفت یک بار موجودی نامرئی او را از پله‌ها به پایین هل داده بود. بارها آن روح به اتاق وارد شده و به او تجاوز کرده بود. او را در تختش قل‌تانده بود و باعث شده بود استفراغ کند. در آن زمان او به بیمارستان رفت و بستری شد. برایش اسکیزوفرنیه پارانوئید تشخیص داده شد و شروع به دریافت دارو کرد. بعد از یک ماه دوباره بیماریش بالا گرفت و در داروهایش تغییراتی داده شد یک سال و نیم بعد و پس از اینکه در فرودگاه به دستور صدایی که در سرش میشنید خودش را از جایی پرد کرد مجدداً بستری شد یک بار هم پس از قطع داروها و مصرف هشیش بستری شده بود در مجموع علائم بیماری او به دارو مقاومت نشان میدادند و به طور کامل برطرف نمی شدند. خودش اعتقاد داشت نیمی از علائمش مربوط به اختلالات ذهنی و نیمی دیگر مربوط به حضور یک روح شیطانی است او از طریق یک وبسایت با کشیشی که به عنوان متخصص جنگیری شناخته شده بود و در برنامه های تلویزیونی مربوط به پدیده های ماورایی حضور می‌یافت، تماس گرفت و هشت جلسه جنگیری رویش انجام شد. خودش می‌گفت که بعد از جلسات راحت‌تر خوابید و آرامش بیشتری داشت. اعضای خانوادهش نسبت به جلسات جنگیری بیاعتماد بودند چون بیمارشان در آن جلسات فریاد می‌زد، به خود می‌پیچید و گاهی استفراغ می‌کرد. آنها از پزشکان خواستند که با کشیش صحبت کنند. گروه درمان از کشیش خواستند وضعیت ذهنی دختر را برای دختر توضیح داد و او را متقاعد کند که صرفاً به درمانش بپردازد. کشیش گروه درمانی را ناامید کرد و بر سر عقیدهش مبنی بر اینکه یک روح شیطانی آن دختر را تسخیر کرده ماند. اسکیزوفرنی بر تفکر، احساسات و اعمال بیمار تاثیر می‌گذارد. علائمش گاهی شدید و گاهی خفیف هستند. گاهی میآیند و گاهی میروند و در همه به یکسان بروز پیدا نمی‌کنند. از جمله عوارضی که ممکن است در طی اوجگیری بیماری ظاهر شود، توهم است. به این ترتیب که شخص چیزهایی می‌شنود، می‌بیند یا استشمام می‌کند که دیگران از آنها بیخبرند توهمات شنیداری می میتواند شامل یک یا چند صدا باشد که در گوششان حرفهایی را زمزمه می کند و یا دستوراتی میدهد. دهد دستوراتی که ممکن است با خشم و اصرار ادا شود و از آنها بخواهد کاری را انجام دهند در توهمات دیداری شخص ممکن است نور، اشیا و افرادی را ببیند اغلب افرادی که دوستشان دارد و دیگر زنده نیستند را میبیند. گاهی توهمات دیداری باعث می شود نتوانند فواصل را به درستی تشخیص دهند. توهمات بویایی و چشایی می موجب شود تصور کنند کسی می‌خواهد آنها را مسموم کند. توهمات مربوط به لامسه می به این تصور منجر شود که دستی روی بدنشان حرکت می و یا حشرات روی تنشان راه می روند. گاهی تصور می کنند توسط یک روح یا احریمند تسخیر شدند. عوارض دیگری همچون میل به انزوا، بروز حیجانات شدید، کاهش لذت زندگی، گفتار آشفته، بیتوجهی به اتفاقات محیط اطراف، از دست دادن انگیزه و احساسات، کاهش توان تمرکز و اشکالاتی در حافظه کوتاه مدت نیز ممکن است دیده شود. اختلال اسکیزوفرنی در یک درصد مردم دنیا بروز پیدا می کند و در مردان بیشتر است. در دهه 1990، پاول چادویک و مکس برچوود مطالعاتی بر روی 26 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی انجام دادند. که همگیشان دچار توهمات شنیداری مقاوم به درمانی بودند همه این بیماران صاحبان صدا را دارای قدرت نامحدود و علم نامحدود می شناختند اما بعضی از آنها صاحب صدا را موجودی نیک و خیرها و بعضی آن را موجودی شرور و بدخواه تشخیص داده بودند بعضی صاحب صدا را شیطان و بعضی او را خدا میدانستند یکی از آنها یک زن سی و چهار ساله با اصلیت ایرانی بود که میگفت دستوراتی از معصومه خواهر امام هشتم شیعیان درباره کارهای روزمرهاش همچون امتحان کردن روشهای جدید پخت و پز زمان تعویض پوشک بچه و یا چگونگی جلب رضایت شوهرش میشنود توهم دیداری او با دارو رفت شد اما توهمات شنیداریش ادامه پیدا کرد. ولی نهایتاً طی هجده هفته و با روش شناخت درمانی بهبود قابل توجهی یافت و توانست به شغلش بازگردد. مورد دیگر زنی 59 ساله بود که صدای خدا را میشنید شنید که به او می گفت خودکشی کند و یا خانواده و یکی از همکارانش را بکشد. گاهی این صدا دیگران را متهم میکرد که شیطان هستند و به زن میگفت با آنها حرف نزند او در توهمات دیداریش دختر مرده و نیز سگش را میدید که شبها نزدش میآمدند و از او میخواستند تا با اجرای فرامین خدا به آنها در بهشت ملحق شود در قرون گذشته کسانی که چنین عوارضی نشان میدادند را تحت تسلط شیاطین و موجودات ماورایی تصور می کردند و با دعا و اعمالی خاص تلاش می کردند که ارواح شرور را از بدن آنها بیرون کنند در واقع ادعاهایی که خود فرد مبتلا به اسکیزوفرنی مطرح می کرد در کنار طبیین که متون دینی و روحانیون ادیان در مورد چنین پدیدههایی ارائه می کردند مردم را متقاعد می کرد که واقعا موجودی ماورایی بدن بیمارشان را تسخیر کرده و یا او را آزار میدهد اطرافیان بیمار که رنج زیادی از رفتارهای بیمارشان میبردند چارهای نمیدیدند جز اینکه به زعم خودشان از دست یک نیروی ماورایی به نیروی ماورایی دیگر پناه ببرند تا مشکل حل شود به این ترتیب عوارض توهمی اسکیزوفرنی هم برای خود بیمار و هم برای اطرافیانش به عنوان شاهدی بر وجود موجودات ماورایی مطرح شده در دینشان تلقی می گردید. عوامل متعددی برای ایجاد اسکیزوفرنی شناخته شده اند که یکی از آنها براست است. از مهمترین داروهایی که برای بهبود این بیماری استفاده می شوند، داروهایی هستند که گیرنده های دوپامین را مسدود می کنند زیرا ظاهراً افزایش ناقل عصبی دوپامین با بروز علائم اسکیزوفرنی مرتبط است. در اسکیزوفرنی، سیستم های عصبی وابسته به ناقل های گلوتامات و نیز دچار تغییراتی می شود. عنوان تشخیص الگو یکی از روش های رسیدن به شناخت و معرفت تشخیص الگوست. مثلا من همچون اجدادم یک قارنشین هستم صبح زود با بقیه خانواده به قصد جمعوری آزوقه از قار خارج میشم. از که همگی برمیگردیم من جای پای خرسی را که پنجش به سمت قار است می بینم. این جای پا را موقع رفتن ندیده بودم. پس به این نتیجه می رسم که باید در نبود ما اتفاقی افتاده باشد و ممکن است خرسی به سمت غار رفته باشد و الان داخل قار باشد. در واقع پدیده هایی که مشاهده می کنم در ذهنم به صورت یک الگو در می آید و این الگو معنایی در خود دارد و باعث می شود به این شناخت برسم که در نبود ما احتمالاً خرسی به داخل قار رفته و شاید هنوز آنجا باشد حالا برادرم میگوید امروز صبح قبل از رفتن این جای پا را دیده بوده اکنون الگو عوض می شود چرا که مختص زمانی ایجاد جای پا به جای بعد از خروج خانواده مربوط به پیش از خروج خانواده از قار است حالا الگوی جدیدی می بینم که معنای جدیدی دارد و شناخت جدیدی به من می‌دهد این شناخت جدید حاصل از الگوی جدید منجر به راحت‌تر شدن خیال من می‌گردد تشخیص الگو در پدیده‌های اطراف و معنای آنها و شناخت و باوری که در پی تشخیص این الگوها در ما ایجاد می‌شود در زندگی ما حیاتی است و در تسنیماتمان تعیین کننده است اما همین خصوصیت مغز که پیوسته در جستجوی الگوهاست گاهی درست عمل نمی کند و به جای جستجوی الگوی معنادار خودش دست به خلق الگوی معنادار می زند. جنیفر ویتسون از دانشگاه یو هر یک از داوطلبان شرکت در تحقیقش را جلوی یک مانیتور می نشاند. و در هر نوبت دو شکل مثلا یک حرف T در یک دایره و یک حرف A در یک مربع را نشان میداد و ادعا می کرد که این اشکال را کامپیوتر با استفاده از یک مفهوم می سازد و شما باید آن مفهوم را از بین پاسخهای موجود حدس بزنید. بعد از هر حدسی که می زدند چیزی در مورد درستی یا نادرستی حدسشان به آنها گفته نمیشد. لذا آنها حس می کردند کار را به درستی انجام می دهند و حدسشان درست بوده و همه چیز تحت کنترلشان است سپس یک تصویر برفکی و بیمعنا روی مانیتور ظاهر می شد و از آنها خواسته می شد بگویند آیا تصویری در این برفک ها تشخیص می دهند یا نه و اگر بله آن تصویر چیست شرکت کنندگان تصویر معناداری در برفک ها تشخیص نمیدادند و حقیقت آنکه تصویر معناداری هم در صفحه برفکی مانیتور وجود نداشت با گروه دوم داوطلبان نیز همان کار انجام شد و زوج تصویرهایی به آنها نشان داده میشد. تا مفهوم نهفته در آنها را از بین چهار جواب پیشنهادی انتخاب کنند این بار حدس آنها به طور تصادفی تأیید یا رد می شد. مهم نبود حدسشان چه بود کامپیوتر به شکل تصادفی گاهی حدس آنها را تعیید و گاهی رد میکرد. آنها حس می نمیتوانند نمی به خوبی مفاهیم پشت تصاویر را درک کنند و کم کم احساس می کنترلی بر اوضاع ندارند چون شکست می‌خوردند بدون آنکه بدانند چرا شکست می‌خورند در چنین حال و روزی به آنها تصاویر سفید برفکی نشان داده می‌شد و خواسته می‌شد که اگر شکلی را درون برفک تشخیص می‌دهند بازگو کنند شکلی که در واقع اصلا وجود نداشت این بار بسیاری از آنها می‌گفتند تصویری را تشخیص می‌دهند و نام آن تصویر را هم میگفتند مثلا میگفتند تصویر یک فیل یا یک قورباغه یا یک صندلی را تشخیص میدهند گویا وقتی کنترل اوضاع از دستمان خارج می شود بیشتر و بیشتر موفق می در میان پدیدههای تصادفی و بی‌معنای اطرافمان یک الگوی منظم و معنادار پیدا کنیم گاهی بالا و پایین شدن ارزش سهام را در دست توت گان اقتصادی میابید. گاهی هر حادثه اتفاقی در اجتماع را نتیجه عملکرد یک گروه قدرتمند شرور می و گاهی حوادثی که در زندگی برایمان پیش میآید را طراحی یک طراح هوشمند و خیر می که میخواهد درسی به ما بدهد یا ما را امتحان کند. در واقع ما از جمع همه پدیده‌ها به این نتایج نمیرسیم، بلکه پدیده‌ها را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که از کنار هم چیدن آنها معنای خاص درآید ما پدیده‌های دیگر را که آن معنا را رد می‌کنند هرس می‌کنیم مثلا اگر دهها ها کودک در اثر بیماری و حوادث بمیرند را نمی‌بینیم ولی اگر یک کودک از یک حادثه جان سالم در برد همان را در نظر میگیریم و میگوییم لابد خدا همیشه فرشتگانی را به حفظ کودکان بیگناه میگمارد وگرنه این کودک باید میمرد این نظریه می‌تواند توضیح دهد چرا تئوری توطعه و نیز باورهای مذهبی در بین فقرا و یا افرادی که به مصاحب شدید دچار اند بیشتر است آنها به این ترتیب خود را رها شده حس نمی‌کنند آنها الگویی می‌بینند که معید یک معناست و آن معنا این است که همه چیز تحت کنترل ذهنی مهربان یا اذهان شرور اما مسلط و عاقل است ازهان شروری که گرچه دلسوز مردم نیستند اما به هر حال بنابر یک اقلانیت عمل می‌کنند و به دلیل همین اقلانیت و تسلط کاملی که بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارند، اجازه نمی دهند همه چیز از یک نظم و ترتیب مشخص خارج شود. آن از شرور و چیره وقتی به هدفشان برسند، مجددا نظم همیشگی را برقرار خواهند کرد. احتمالا یافتن ارتباط بین حرکت ستارگان و سیارات آسمانی و بقای زمینی نیز محصول همین اصرار بر دیدن الگوهای معنادار در پدیدههای اطراف بوده است و حرفه‌ای مثل طالعیینی و حرف مشابه دیگر را به وجود آورده است اختربینان هیچگاه تحقیقی بیطرفانه انجام نداده بودند تا پی ببرند آیا رابطه معناداری بین جایگاه خورشید و ماه و تیر و ناهید و بهرام و برجیس و کیوان با بیماری‌ها، بلایای طبیعی، جنگ‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌های مردم خودشان یا دیگر ملل دنیا وجود دارد یا نه تنها یک یا دو نمونه که به نفع نظریشان بود را انتخاب می‌کردند و بر اساس همان به فرمولی در این رابطه می‌رسیدند و به آن فرمول ایمان پیدا می‌کردند و به علم اختربینی اضافه اش می‌کردند اگر یکی دو نفر که متولد خورداد بودند را واجد صفتی می دیدند بدون توجه به دیگر متولدین خورداد که آن صفت را نداشتند نتیجه می گرفتند که متولدین خورداد چنان صفاتی دارند و بر اساس همین معرفت کاذب در مورد بقیه خورداد ماهی ها هم قضاوت می کردن. شاید آرامش بخش بودن این الگو های مغز نقش مثبتی در تکامل ما بازی کرده باشد به هر حال ظاهرا گاهی این خصوصیت باعث می‌شود مؤمنین دست خدایشان را در وقوع یک اتفاق آشکار و هویدا ببینند و به اطمینان برسند که حتما طرح و اراده و دست خدا یا مسیح یا ویشنو یا شیوا یا مریم یا سنت پیتر یا ابوالفضل یا علی در کار بوده و بدینسان سان الگویی که دیده‌اند شناخت و معرفتی در ذهنشان ایجاد کند که یا ایمانی برایشان میسازد و یا به ایمانشان می‌افزاید. عنوان اعتماد به اجماع نخبگان اگر از من بپرسند سرعت نور چقدر است؟ با اطمینان قابل توجهی میگویم هزار کیلومتر بر ثانیه. اگر بپرسند فاصله خورشید تا زمین چقدر است، باز با اطمینان خواهم گفت حدود 150 میلیون کیلومتر. من این اطمینان را از کجا آوردم؟ نه تنها خودم هرگز سرعت نور یا فاصله زمین تا خورشید را محاسبه نکردم، بلکه حتی بلد هم نیستم این کار را انجام دهم. با این همه نسبت به اطلاعاتی که در این دو مورد دارم احساس داشتن شناخت و معرفت دارم و اگر از مردم عادی کسی منکر این دو گزار شود وی را فردی نادان به شمار میآورم که جاهلانه با علم سر ستیز دارد این احساس عمیق معرفت نسبت به سرعت نور یا فاصله زمین تا خورشید چگونه در من ایجاد شده اگر به من خبر برسد که دانشمندان فیزیکدان بر سر اندازه سرعت نور به اختلاف خوردهاند، دیگر ایمانم را به این سرعت نور 300 هزار کیلومتر بر ثانی از دست می دهم. در واقع این اتفاق نظر یا اجماع نخبگان یک رشته است که باعث می شود گزارهای مورد اجماع در آن رشته را دانش قابل اعتماد تلقی کنم و روی آن حساب باز کنم و با صحیح فرض کردن آنها مسائل علمی را حل کنم. واقعیت این است که اتفاق نظر علمای یک علم در ما انسانها احساس شناخت و معرفت نسبت به گزاره های آن علم ایجاد می کند. در بین مؤمنین ادیان نیز این تلقی نسبت به علمای دینشان وجود دارد. البته این رویه درباره احکام یک دین که از متون آن دین استنبات می شود غیر عادی و غیر منطقی نیست به هر حال روحانیون یک دین فنون و علم لازم را برای اجتهاد یک حکم دینی از بین متون مقدس و منابع آن دین آموختند و اگر در مورد یک حکم دینی به اجماع نسبی برسند چاره ای جز اینکه فرض کنیم لابد عمل به حکم اجتهاد شده از همه به سباب نزدیک نزدیکتر است و بعید است که اکثریت علمای دینی دوچار خطا شده باشند اما بسیارند مؤمنانی که در مورد اصول اعتقادی و ایمانی دینشان یا به عبارت دیگر در مورد اصول دینشان هم به همین شیوه به معرفت و شناخت رسیدند و بدون اینکه به خدا و پیامبر و معاد دینشان به لحاظ عقلی فکر کرده باشند و جهان جهانبینی دینیشان را با منطق خودشان ارزیابی کرده باشند صرفاً با اعتماد به اجماع کامل روحانیون دینشان تمام اصول دینشان را معقول و منطقی و قابل قبول فرض کردهاند اما سوال اینجاست که آیا به همان دلیل که اجماع نخبگان فیزیک درباره سرعت نور برای ما اطمینان بخش است اجماع روحانیون شینتو درباره وجود خدای خورشید اطمینان بخش است مردم چه آگاهانه و چه ناخودآگاه سه شرط را در نخبگان علوم تجربی سراغ دارند و بر اساس وجود این سه شرط است که اجماع نخبگان برایشان معرفت زا محسوب می شود. یک کنجکاوی مردم می دانند که نخبگان علوم تجربی نسبت به علوم کنجکاو هستند و از سر همین کنجکاوی بوده که مقولات این علوم مورد مطالعه و تحقیق و بحثشان قرار گرفته است. کنجکاوی باعث می شود دانشمندان بخواهند بدانند حقیقت در یک مقوله خاص چیست کنجکاوی باعث می شود آنها روش های هرچه اطمینان بخشتری برای کشف حقیقت پیدا کنند. کنجکاوی باعث می شود به روش های یکدیگر برای کشف حقیقت شک کنند و آنها را زیر سوال ببرند و در موردشان به بحث بپردازند. کنجکاوی زامن کارآمدی و قابل اعتماد بودن هرچه بیشتره، علوم کشف شده است کنجکاوی همان است که یک نخبه علوم تجربی را تبدیل به یک نخبه کرده است اگر یک دانشمند علوم تجربی اهل کنجکاوی نباشد به مسیر تحقیقات در رشتهش وارد نمی شود و به جمع نخبهگانی که این علم را جلو می برند و دربارهش تحقیق و بحث می کنند نمی پیوندد و در این وادی مطرح نمی شود. اما روحانیون علوم دینی درباره اصول عقاید دینشان کنجکاوی ندارند بلکه ایمان دارند. ایمان محکم افتخار روحانیون است. آنچه روحانی یک دین را به روحانی تبدیل می کند در درجه اول ایمان است. نه کنجکاوی و شک و تردید در اصول اعتقادات و جهان بینیش. اگر یک روحانی درباره اصول دینش مثلا در مورد وجود خدای دینش در کتب فلسفی تحقیق کند و یا به بحث بپردازد معمولا از جهت کنجکاوی نیست بلکه قصد یافتن راههای اقلانی برای تحکیم ایمانش را دارد اگر فلسفه و منطق اصول اعتقادی روحانی را تأیید کند که چه بهتر. اما اگر به شکلی جدی زیر سوال ببرد، او غالبا ترجیح می فلسفه و منطق را رها کند، نه اصول اعتقادیش را. و به همه هم خواهد گفت که زیاد به دنبال فلسفه و منطق نرود اسطوره های عدیان نیز معمولا کنجکاوی را مزموم می و نشان می دهند چه بلاهایی بر سر کنجکاوان میآید. مگر اینکه به سرعت به ایمانشان باز گردند. دو وجود معیار فیصل بخش در علوم تجربی شرط دومی که مردم از آن آگاهند این است که نخبگان علوم تجربی مشاهده و تجربه حسی را معیاری فیصله بخش برای رسیدن به اجماع در بین خودشان می‌دانند معیار تجربه و حس معیاری است که هر دانشمندی با هر عقیده و زبان و ملیت و نژادی آن را فصل الخطاب می‌داند و بالاخره پس از چند ماه یا چند سال با مشاهدات تجربی و آزمایش‌های مناسب اختلاف نظرها کنار گذاشته می‌شود و یک نظریه به عنوان بهترین نظریه برای توضیح مشاهدات و یا به عنوان کارآمدترین نظریه برای استفاده علمی توسط اکثر دانشمندان پذیرفته و مفروز گرفته می شود. اما در مورد اصول عقاید دینی مثل وجود خدا و خدایان و صفات آنها جهان غیب و دنیای پس از مرگ رابطه زندگی قبل از مرگ با زندگی پس از مرگ و داستان خلقت جهان توسط خدایان مختلف میار مشخص و مورد توافق همگانی وجود ندارد و در یک دین خاص هر کسی ادعا می کند بر اساس یک یا چند میار به آن دین ایمان آورده است. مثلا بعضی ادعا می کنند بر اساس اعتماد به وح و راستگوپ داشتن پیامبرشان بعضی بر اساس فلسفه و منطق، بعضی بر اساس تجربیات عرفانی، برخی بر اساس معجزاتی که دیدند، بعضی بر اساس معجزاتی که داستانش را شنیدند، بعضی بر اساس اعتقاد به خوابهایی که دیدند، برخی بر اساس توهمات شنیداری و دیداری خودشان، بعضی صرفند بر اساس اعتماد به سخنان گذشتگان و بعضی به خاطر خوبی و اخلاقیات نیکویی که در دینشان توصیه شده است، به دینشان ایمان دارند. اگر هم بحثی بر سر هر یک از این معیارها صورت گیرد و نهایتاً آن معیار، معیاری نامناسب از نظر معرفت شناختی تشخیص داده شود، شخص مؤمن معمولاً به سراغ معیارهای دیگر می رود. و در پایان نتیجه این مبنی بر غلط بودن اصول دینش نمیگیرد مثلا اگر کسی بگوید به این جهت به درستی دینم باور دارم که بهترین دستورات اخلاقی در این دین وجود دارد آنگاه که دستورات اخلاقی بهتری در ادیان دیگر به او نشان داده شود و یا جوامع پیشرفته تر و با اخلاق تری که دین دیگری دارند را به او معرفی کنند بعید از تصمیم به تغییر دین بگیرد. به عبارتی معمولاً برای مؤمنین و روحانیون معیار فیصل بخش و یک ابزار شناختی که بتواند فصل الخطاب باشد و تکلیف درستی و نادرستی اصول اعتقادیشان را روشن کند وجود ندارد. ایمان دینی معمولاً بر اساس ابزارهای شناختی مشترک و مشخص شکل نمیگیرد. تا با همان ابزار شناختی مورد خدشه قرار گیرد و همه مردم دنیا با هر زبان و ملیت و نژادی بتوانند بر سر موضوعات آن به نتیجه مشترک برسند. 3. عدم ارتباط عقیده علمی با عضویت در جامعه علمی. شرط سومی که مردم در مورد جامعه علمی و نخبگان یک علم از آن آگاهند این است که اگر یک نخبه نظریه ایران نپذیرد و همچنان نسبت به آن تردید داشته باشد و مثلا تحقیقی را حائز شرایط برای نتیجهگیری نهایی نداند و درستی نظریه را منوط به تحقیق بیشتر بداند از جامعه علمی اخراج نمی شود. یک فیزیکدان که به درستی نظریه نسبیت عام انشتیند شک داشته باشد از جامعه فیزیک رانده نمی‌شود اما اگر یک روحانی به هر یک از اصول دینش حتی شک هم داشته باشد دیگر نه خودش خودش را عضو روحانیت آن دین می‌داند و نه روحانیون دیگر و مردم مؤمن او را یک روحانی به حساب می‌آورند لذا مردم نمی‌توانند چیزی جز اجماع روحانیون دینشان در مورد صحت اصول دینشان ببینند هرگز روحانیون دین شینتو بر سر اینکه خدای خورشید وجود ندارد به اجماع نمیرسند. هر کدام از آنها که در وجود خدای خورشید شک کند و یا آن را انکار نماید ماهیتاً دیگر یک روحانی شینتو نیست و به صورت خودکار از این جمع خارج می گردند. البته خروج از یک دین و از دست دادن ایمان دینی برای مؤمنین غیر ممکن نیست و برای روحانیون ادیان نیز اتفاق میافتد. حتی می توان گفت چیر اندیشمندان مخالف یک دین همان مؤمنین و روحانیونی هستند که زمانی به اصول آن دین اعتقاد راسخ داشتند اما نهایتا ایمانشان را از دست دادند این افراد می توانند ریز بینانه ترین نقدها را به اصول دین گذشتهشان وارد کنند به هر حال نبود سه شرط یاد شده در جامعه روحانیت هر دینی و تفاوت ماهوی جامعه روحانیون با جامعه نخبگان علوم تجربی باعث میشود اجماع آن جامعه بر سر اصول عقیدتی و جهانبینی آن دین نتواند قابل مقایسه با اجماع نخبگان رشته های علمی باشد ولذا نباید موجب شکلگیری حس شناخت و معرفت گردد فقط افراد دیندار و مؤمن نیستند که این چنین تحت تأثیر اجماع غیر معتبر یک گروه قرار می گیرن. طرفداران تئوری توطعه هم ممکن است همین خطا را مرتکب شوند مثلا مخالفین واکسیناسیون به اجماع همه دیگر مخالفین واکسیناسیون نظر می کنند و آن را یک معیار شناختی تصور می کنند و در دل می گویند مگر می شود این همه مخالف واکسیناسیون که در بینشان افراد تحصیل کرده هم کم نیستند همگی بر خطا باشند. در اینجا هم با یک گروه مرجع طرفیم که سه شرط گفته شده را ندارند. اول اینکه کنجکاف نیستند. مخالفین واکسیناسیون که به تئوری توطعه باور دارند به باورشان شک نمی کنند و بنا ندارند به تحقیق بپردازند. آنها سوال ندارند، بلکه فکر میکنند جواب در دستشان است. آنها فکر میکنند هر تحقیقی ساختگی به جلیست و جعلی است و سرمایه سرمایهداران و گروههای شروری در کار است که معلوم نیست دقیقا چه کسانی هستند. اما به هر حال وجود دارند و بر همه چیز از جمله رسانهها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی حکومت‌های جهان و از این قبیل چیرگی و استیلا دارند و لذا این افراد اظهارات هیچ مرجعی در تأیید واکسیناسیون را قابل اعتماد نمی‌یابند. دوم اینکه مخالفین واکسیناسیون معیاری فیصله بخش چون مشاهده و تجربه استاندارد ندارند. زیرا هیچ مشاهده و تجربه استانداردی را توسط هیچ مرجع و منبعی قابل اعتماد و اطمینان نمی دانند و تنها با منطق خاص خودشان به مخالفت با واکسیناسیون می رسند. در منطق آنها هر اظهار نظر یا اتفاق موردی در هر گوشه دنیا که شاهدی بر علیه واکسیناسیون باشد مهم، معتبر و تعین کننده است. اما شواهد موافق با واکسیناسیون غیر معتبر هستند و از مجموعه اطلاعاتشان حذف می‌گردند. سوم اینکه تعریف گروه مرجعشان مشخص است. مخالفین واکسیناسیون. طبعا هر یک از افراد این گروه که نظرش عوض شود و موافق واکسیناسیون گردد، دیگر عضو گروه نیست. لذا حالتی جز اجماع این گروه بر علیه واکسیناسیون متصور و ممکن نیست. بدین ترتیب اتفاق نظر میلیون مخالف واکسیناسیون بر علیه واکسیناسیون نمی تواند و ابزار معرفتی قرار گیرد. اجماع موافقین واکسیناسیون تا وقتی که ماهیتشان به موافقت با واکسیناسیون گره خورده باشد نیز، نمیتواند معیار و ابزار شناخت باشد آنچه میتواند معیار و ابزار شناخت باشد اجماع نخبگان علم پزشکی و سلامت است دانشمندانی که نسبت به راه های حفظ سلامتی و افزایش طول عمر انسانها کنجکاوی و دقدقه دارند و معیار و ابزارشان مشاهده و تجربه است و فارغ از هر نتیجه‌ای که به آن برسند خواه موافقت با واکسیناسیون خواه مخالفت با آن همواره عضو نخبگان علم پزشکی و سلامت میمانند و از این جمع رانده یا خارج نمیشوند برای این گروه مشاهده و تجربه ابزار شناخت و معرفت است و برای ما مردم عادی اجماع این گروه ابزار شناخت و معرفت است پیشنهاد میکنم به بحث هولوکاست و اینکه آیا باید آن را واقعیت شمرد یا انکارش کرد نیز از این زابیه نگاهی بیاندازید اجماع مورخین معتبر جهان که دغدغه کشف حقایق تاریخی را دارند بر کدام است گرامیان همینجا در صفحه 105 فایل آوایی هفتم از کتاب فیزیولوژی ایمان به پایان می‌بریم تا درودی دیگر بدرود